باب ششم در ضعف و پیری حکایت با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی همین کردم که جوانی از در درآمد و گفت در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند قالب اشارت به من کردند گفتمش خیر است گفت پیری صد و پنجاه ساله در حالت نزع است و به زبان پارسی چیزی همیگوت و مفهوم ما نمیگردد اگر به کرم رنجی شوی موس دیابی باشد که وصیتی همیکند چون به بالینش فرا رسیدم این میگفت دمی چند گفتم برارم به کام دریغا که بگیرفت راه نفس دریقا که بر خان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتند، بس. معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت چگویم، ندید این که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در میکنند کنند، دندانی، قیاس کن که چه حالت بود، در آن ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی، گفتم تصور مرگ از خیال به در کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان که فیلسوفان یونان گفتند، مزاج ارچه مستقیم بود، اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاك نکند اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند دیده برکرد و بخندید و گفت دست بر هم زند طبیب ظریف چون خرف بی ندوفتاد حریف خاجه در بند نقش ایوان است خانه از پای ویران است، پیرمردی ز ناز می نالید. پیر پیرزن سندلش همی مالی. چون مخبت شده اعتدال مزاج، نه عظیمت اثر کند، نه علا